به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها فرهنگی هر قوم و ملتی رو نشون میدن ورزش های سنتی و زمینه فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف رو منکس میکنن همه افسانهها ها سری از حقیقت دارند حقیقت مبارزه بیوقفی روشنایی و تاریکی مبارزه خیر و شر و حقایق تلخ و شیرین زندگی آدمیان افسانه ای رو براتون نقل میکنم با نام افسانه ای وای های برگرفته از کتاب افسانه های کچل به گردآوری محمد رضا شمس روزی روزگاری توی این دنیای به این بزرگی کچلی بود به اسم ابراهیم کچل هر روز صبح به صحرا می رفت و غروب خسته و کوفته به خونه بر می گشت کچل افثانه ما هر روز توی راه دختر پادشاه رو می دید و این دیدنها کار دست کچل داد بله بالاخره کچل آشق دختر پادشاه شد ولی نمیتونست این رو به کسی بگه اما یه روزی دلو به دریا زد و به پدر و مادرش گفت باید باید دختر پادشاه رو برای من خاستگاری کنیم مادرش گفت پسرم ما که توی هفتاسمون یه ستارم نداریم چجوری میتونیم به خاستگاری دختر پادشاه بریم ها؟ پدرش هم اضافه کرد پسرم این فکر رو از سرت بیرون کن چون چون اصلا عملی نیست اما ابراهیم پاش رو توی یک افش کرد که الا و بلا باید دختر پادشاه رو برای من خاصکاری کنید و اون گفت و گفت و گفت تا بالاخره مادرش قبول کرد و به پدر ابراهیم گفت مرد حالا که پسر دست دستبردار نیست فردا برو روی سنگ خاستگاری بشین اتفاقی که نمیافته فقط پادشاه جواب رد میده اون وقت میای و به پسرت میگی تا دیگه سریجاش بشینه و حرف دختر پادشاه رو نزنه مرد هم قبول کرد که صبح اول وقت بره و روی سنگ خاستگاری بشینه پدر ابراهیم کشل افثانی ما صبح زود از خواب بیدار شد و به طرف قصر پادشاه به راه افتاد خدمتکارها در حال آبوجارو بودن مرد یه راست رفت روی سنگ خاستگاری نشست پادشاه اونو دید و دستور داد که به نزدش بیاد. مرد جلو رفت و عدای احترام کرد پادشاه گفت ای مرد چی میخواییم؟ مرد گفت قربان از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه برای پسرم اومدم خواستگاری البته اربان کسارت منو میبخشید پادشاه سکوت کرد و چیزی نگفت چند دقیقه بعد هم وا کرد و گفت من دخترم رو به کسی میدم که بازی عجیبان غریبان و بلد باشه این شرط منه آیا پسر تو این بازی رو بلده؟ مرد به فکر رو رفت. راستش اونم تا به حال اسمی از بازی عجیبان قریبان نشیده بود. ولی به روی خودش نیورد و به پادشاه گفت: قربان اگه اجازه بفرمایید من شرط شما رو به پسرم بگم شاید اون این بازی رو بلد باشه و به آرزوش برسه و داماد شما بشه. پادشاه سریع تکون داد و چیزی نگفت مرد هم به خونش برگشت مرد به خونه برگشت و شرط پادشاه رو برای پسرش ابراهیم بازگو کرد ابراهیم کمی فکر و گفت پدرجان زود باش من و پیشه عجیبان غریبان چی ببر مرد گفت پسر جون من که نمیدونم دونم عجیبان غریبان چی کجاست باید سبر کنی تا از اینون بپرسم شاید به نتیجه برسیم مرد با این حرف چند روزی ابراهیم رو سردوند تا اینکه ابراهیم طاقتش تاق شد و گفت من دیگه طاقت ندارم باید همین الان بریم پیش عجیبان غریبان هرچی مرد گفت که من نمیدونم عجیبان قریبان چی کجاست فایده‌ای نداشت که نداشت به مادر ابراهیم گفت مرد دستشو بگیر و ببر جلوی چشمش از چند نفر بپرس تا خودش ببینه که کسی سراغی از عجیبان قریبان چی نداره بعد پشیمون میشه و میاد سر جاش میشینه مرد هم همین کارو کرد اونا چند ساعت توی شهر گشتن و گشتن ولی هیچ کس از عجیبان غریبان چی خبری نداشت نزدیک غروب پدر و پسر خسته و کوفته به چشمه رسیدند مرد گفت آه بهتره کمی استراحت کنیم خیلی خسته ایم. خستگیمون که در رفت بعد دوباره می کردیم. پدر به خاطر خستگی آهی کشید و گفت آه ای وای های در این موقع آب چشم تکونی خورد و کتوله بیرون اومد و پرسید هان داشتی؟ پدر با تجب نگاهی به کتوله انداخت و گفت من, من با تو کاری ندارم از صبح را افتادیم کسی رو پیدا کنیم تا به پسرم بازی عجیبان قریبان رو یاد بده اما کسی رو پیدا نکردیم برای اینکه خستگی در کنیم اینجا نشستیم و من از شدت خستگی گفتم ای وای های همین کتوله خندهی کرد و گفت ای وای های اسم منه و توی این شهر فقط من این بازی رو بلدم ابراهیم و پدرش با خوشحالی گفتن واقعا؟ تو بازی عجیبان غریبان رو بلدی؟ کتوله گفت البته که بلدم مرد گفت میشه میشه این بازی رو به پسر من یاد بدی؟ کتوله به تندی جواب داد البته که میشه و بعد دست ابراهیم رو گرفت و با خودش به داخل چشمه بود ساعتی گذشت ولی از ابراهیم و کتوله خبری نبود که نبود مرد با ناراحتی کنار چشمه رفت و منتظر موند ولی باز خبری از اومدن ابراهیم و کتوله نشد مرد با ناراحتی گفت خدایا خدایا این چه کاری بود کردم دستی دستی پسرمو دادم دست این کتوله حالا حالا جواب مادرش رو چی بدم از طرف دیگه ابراهیم و ای وای های به خونه اون رسیدن ای وای های دختری داشت که تا ابراهیم رو دید آرزو کرد زن ابراهیم بشه و به اسطلاح عاشق ابراهیم شد چند ساعتی گذشت دختر در یه فرصت مناسب به ابراهیم گفت هر کسی اینجا بیاد دیگه نمیتونه از اینجا خارج بشه ابراهیم که این حرف رو شنید گفت یعنی چی؟ من اومدم بازی عجیبان غریبان رو از پدری بگیرم و برگردم. پدر و مادرم چشم انتظار منن. من من باید زودتر از اینجا برم. دختر گفت. یه چیزی میگم. اما تو دلت نگی این دختری چقدر پر رواها. میگم. میگم اگه اگه قول بدی با من استفاج کنی. من راه فرار از اینجا رو به میدم. ابراهیم که انتظار شنیدن این حرف رو نداشت با تعجب گفت با تو ازدواج کنم؟ ولی ولی من میخوام و حرفش رو ادامه نداد و چند دقیقه به فکر فرو رفت دختر گفت بالاخره چی میگی؟ قول میدی که؟ ابراهیم به تندی گفت باشه باشه باشه دبوله قول میدم حالا حالا تا پدرت نیمده بگو چجوری از اینجا فرار کنم دختر گفت راهش اینه وقتی پدرم از تو سال کرد چه کاری بلدی؟ بگو فقط جارو کردن و آب روی نون پاشیدم بلدم ابراهیم حرفای دختر رو خوب به خاطر سپر تا وقتی ای وای های ازش پرسید فورا همونا رو بگه و نجات پیدا کنه ابراهیم مدتی که پیش اونا بود یواش یواش بعضی از کارها و تردستی های ای وای های رو یاد گرفت. ولی هر وقت که ای وای های از اون می پرسید خب بگو ببینم چه کاری بلدی؟ فورا جواب میداد. جارو کردن و آب روی نون پاشیدن رو بلدم و ما بشنوید از مادر ابراهیم مادر ابراهیم توی این مدت از بس و زاری کرده بود دیگه امون از شوهرش بریده بود و بالاخره یه روز به شوهرش گفت ای مرد تا کی میخوای از پسرمون بیخبر باشیم پاشو باشو برو پسرم رو پیدا کن و تا پیداش نکردی به خونه نیاد مرد رفت کنار همون چشممو با صدای بلند فریاد زد ای وای های در این موقع چشم تیکون خورد و ای وای های از اون بیرون اومد و گفت با من کاری داشتی مرد گفت اومدم ازت بخوام بذاری ابراهیم چند روزی بیاد خونه مادرش دیگه طاقت ندیدن اونو نداره قول میدم خودم بعد چند روز اونو برگردونم اینجا ای وای های فکری کرد و بعد قبول کرد و رفت ابراهیم رو آورد و به مرد گفت فقط یادت باشه سر چهار روز اونو برگردنی ابراهیم و پدرش به طرف خونه به راه افتادن توی راه ابراهیم با خودش گفت خوبه ببینم چی یاد گرفتم بعد به پدرش گفت پدر من یک کمی کار دارم تو برو من بعدم میام همین که پدر رفت ابراهیم به شکل خروصی بزرگ در اومد و جلوی پدر به راه افتاد پدر اطراف رو نگاه کرد و کسی رو ندید به خودش گفت آه چه خروس بزرگی خوب اونو بگیرم و برای ابراهیم کبابش کنم اما وقتی دستش رو به طرف خروس برد خروس با نوکش محکم به دستش زد و تا مرد خواست خودش رو جمع کنه ابراهیم دوباره به صورت اول در و گفت چی شده پدر چه خبره؟ پدر گفت هیچی هیچی. یه خروس بزرگ دیدم خواستم بگیرمش نوکم زد و رفت ابراهیم خندید و گفت <تصفيق> پدر جان خروس کجا بود؟ من بودم که به شکل خروس در آمدم. خواستم ببینم عجیبان غریبان رو یاد گرفتم یا نه؟ <تصفيق> پدرش خندید و گفت آه پس معلوم حسابی یاد گرفتی حالا زودتر بریم که مادرت سخت چشم را. چند روزی گذشت ابراهیم به پدرش گفت پدر من خروس میشم تو منو به بازار ببر و بفروش فقط مراقب باش که بند پام رو نفروشی اون رو باز کن و به خونه بیار ابراهیم به صورت خروس در اومد مرد خروس رو به بازار برد و فروخت و بند اون رو به خونه برد و دید که ابراهیم توی خونه است فردا که شد ابراهیم گفت پدر امروز من قوچ میشم منو به بازار ببر و بفروش ولی و نفروش هرچی هم که پول دادن اونو نفروش مرد قوچ رو به بازار برد از اون طرف ایوای های هرچه منتظر موندید که ابراهیم برنگشت تو یک گوی تلاش نگاه کرد و دید ابراهیم به شکلی یک درومده در اومده و پدرش اون رو برای فروش به بازار برده ای وای های فورا خودشو به شکل مردی بلند قد در آورد و به بازار رفت و گفت ای مرد این قوچ رو چند میفروشی مرد گفت خیلی ارزون اونو به ده سکه میفروشم خریداری ای وایهای ده سکه رو به اون داد و ریسون قوچ رو گرفت که ببره مرد گفت: نه نه نه ریسونش فروشی نیست اونو نمی فروشم. ای های ده سکه دیگه به مرد داده گفت من که نمیتونم قوچ رو بدون ریسمونش ببرم بیا بیا این ده سکم برای ریسمونش مرد با خودش گفت ده سکه به خاطره یه ریسمونه بیارزش بذار ریسمونو بهش بدم اتفاقی که نمیافته و بعد گوچ رو با ریسمونش به ای وای های داد و به طرف خونه به راه افتاد ولی وقتی رسید کنه دید خبری از ابراهیم نیست فهمید که اشتباه کرده و نمیبایست ریسمون رو هم میفروخت ایوای های غوش رو کشون کشون با خودش برد توی راه میگفت که فقط جارو کردم بلدی و آب روی نون پاشیدن ها؟ هشه. الان الان حسابت رو میذارم کف دستت دختر وای های دید پدرش ابراهیم رو گرفته و داره کشون کشون میاره فهمید الان که پدرش از اون کارد و چاقو بخواد تا سر قوچ رو ببره. بنابراین، هرچه چه کارد و چاقو توی خونه بود پنهون کرد و دود قلیزی را انداخت تا چشفش رو نبینه. ایوای های از بیرون فریاد کشید. آی! آی دختر! اون چاغو رو بیار! زود باش! زود باش! دختر گفت: پدر جان خونه پر از دوده! من نمیتونم چاغو رو پیدا کنم هی های گفت اه پس بیا تو قوچ و نگهدار تا من خودم چاغو رو پیدا کنم دختر قوچ رو گرفت و آهسته توی گوش ابراهیم گفت نگران نباش الان آزادت میکنم فقط زود از اینجا برو و بعد قوچ رو رها کرد و فریاد زد وای پدر پدر پدر بیا که قوچ دستم فرار کرد ای وای های با شتاب بیرون دوید و دنبال قوچ را افتاد قوچ گنجش شد و پر زد ای وای های شد شده اونو دنبال کرد گنجش خودش رو به اتاق پادشاه رسوند اقاب چنگال دراز کرد تا اونو بگیره گنجشت دستگل شد و جلوی پادشاه افتاد اغا به شکل مردی در اومد و جلوی در اتاق پادشا ایستاد و گفت پادشا دستگل منو بده پادشا ناراحت شد و گفت دستگل این مرد رو بدین یه دست دستگل مشتی ارزن شد و ریخت روی زمین مرد هم مرخ شد و شروع کرد به برچیدن دونه های ارزن آخرین دونه ارزن گنجش شد و شروع کرد به پریدن توی اتاق پادشاه مرغ هم به شکل اقاب در و گنجش رو دنبال کرد گنجش باز هم شد یه دست گل و افتاد جلوی پادشاه پادشاه و وزیر حیران و متعجب به تغییر شکلها نگاه میکردن پادشاه یه مرتبه گفت اقاب گنجش دست گل وزیر این همون بازی عجیبان غریبانه. در این موقع دستگل به صورت ابراهیم در اومده گفت جناب پادشاه من رفتم و بازی عجیبان غریبان رو یاد گرفتم همونطوری که خودتون برام شرط گذاشته بودین. پادشاه لبخندی زده گفت حاهاهاها. الان من حاضرم دخترم رو به تو بدم. ابراهیم گفت من من بعدن در این باره با شما صحبت میکنم حالا دستور بفرمایید اون مردی که اسمش ای وای و الان پشت در اتاق شما منتظر منه از اینجا بره. پادشاه هم فورا دستور داد ای های از اونجا بره. ای های هم قبول کرد ولی به این شرط که ابراهیم شب چهارشنبه به خونه اون بیاد. ابراهیم هم قبول کرد. شب چهارشنبه ابراهیم به خونه ایوای هایی رفت. دختر ایوای های اونو به زیر زمین برد. اونجا پر بود از آدمهای طلایی. دختر گفت: آ این آدمو روزی مثل من و تو زنده بودن. اما پدرم همه ای اونا رو تلا کرد. الانم میخواد تو رو به بیابون ببره و تلا کنه. ابراهیم با نگرانی گفت: باید چیکار کنم؟ چجوری نجات پیدا کنم؟ دختر گفت: نگران نباش. وقتی با پدرم به بیابون رسیدی اون اسبی به تو میده و خودش داخل غار میشه و افسون میخونه بعد یه مرد از درون غار بیرون میاد که شوله ی آتیش توی دستشه اون مرد شوله ی آتیش رو به سر هر کس بزنه اون طلا میشه ابراهیم گفت خب خب من باید چیکار کنم دختر گفت تو باید رو رها کنی و یه جایی پنهون بشی اون مرد وقتی کسی رو نبینه دوباره به داخل غار برمیگرده و شعله‌ی آتیش رو به سر پدرم میزنه. اون وقت هر دو طلا میشن اون وقت تو اونا رو بردار و بیار اینجا ابراهیم با دقت به حرف های دختر گوش داد و منتظر اومدن ای وای هایی شد نیمه شب بود که ایوائی های به سراغ ابراهیم اومد و گفت بیا بریم بیرون کاری دارم که باید انجامش بدم زود باش ابراهیم و ایوائی های سوار از شدند و راه افتادند اونقدر رفتند تا به بیابونی رسیدند ایوائی های کنار غار پیاده شد و به ابراهیم گفت دهنه اسب رو بگیری تا من برگردم و به داخل غار رفت ابراهیم از اسب پیاده شد دهنه اسب رو به سنگی بست و یک گوشه پنهون شد در این موقع مردی از غار بیرون اومد که شوره آتیش توی دستش بود به اطراف نگاه کرد کسی رو ندید و برگشت مدتی که گذشت ابراهیم صدایی شنید به داخل غار رفت دید که ایوای های و مرد آتش به دست تلا شدن فورا اونا رو برداشت و به نز دختر ایوای های برگشت و اونو به همسری انتخاب کرد و دیگه حتی به شاهزاده خانم زیبا فکرم نکرد چند روز بعد هم شاهزاده خانم با شاهزادهی از سرزمینی دیگه ازدواج کرد و کچل و همسرش هم مثل بقیه مردم شهر در مراسم باشکوه عروسی اونها شرکت کرد شرح شنیدید افسانه ایرانی بود ای وای های بود برگردست کتاب های کچل به گردآوری محمد رضا شمس کار گردآوری افسانه‌ها و قصه های ایرانی که نزدیک به یکصد ساله با کوشش و تلاش پژوهشگران ایرانی و خارجی ادامی یافته و هنوز تا رسیدن به مرحله کمال راه درازی در پیش اهمیت این کار در اینه که چون فرهنگ آمیانه اساساً شفاهی و سینه به سینه و نصد به نسل منتقل میشه اگه به موقع برای ثبت و ضبط و مکتوب کردن اون کوشش نشه به تدریج از خاطرها و حافظها فراموش میشه. پاستاشت ضبط و مکتوب کردن افسانهها، ها امری ضروریه. امیدواریم به این امر فرهنگی توجه بیشتری بشه. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صدابردار راهلی غفاری تای کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود